سحیفه معرفت شرح دعای هفته سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین تاهرین المعصومین لاصی ما بقیت الله فی الارزین همون گونه که انایت دارید در این سلسله مباحث می از صحیفه سجادیه این کتاب عظیم القدر امام سجاد علیه السلام درسهای زندگی بیاموزیم تحت این عنوان که چه می بعضی انسانها رفتار و حرکات درست انسانی دارند برخی دیگر به عکس رفتار و حرکاتشون انسانی نیست هم به خود صدمه میزنند هم باعث میشوند که دیگران از زندگی سالم باز بمانند ولی برای اینکه مدخلی و مقدمه قرآنی نسبت به این بحث داشته باشیم اول از قرآن کریم شروع کردیم که قرآن کریم علت حرکات ناپسند انسان را وقتی برای ما تحلیل میکند یکی از مهمترین اونها را نزق شیطان معرفی میکند. در جلسه گذشته نزق رو معنا کردم نزق شیطان رو از آیه دویست و دویست یک سوره اعراف مختصرا توضیح دادم عین همون مطلب که در جلسه گذشته مطرح شد در سوره فصلت آیه سی و شش هم آمده است که دیگه به تکرار اون نمیپردازیم. ولی از جمله سوره های قرآن کریم که به این مطلب توجه داده همگی هم این سوره رو حفظیم و معمولا زیاد هم تلاوت میکنیم سوره ناس است وقتی خداوند دستور میدهد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنت و <ناس> این سه آخر سوره ناس رو یه مقدار بیشتری دقت کنیم تا این بحثی رو که جلسه قبل با هم شروع کردیم و ان الله از این طریق وارد صحیفه سجادیه بشیم برای ما روشنتر باشد این سه آیه میفرماید ما وقتی قبلش گفتیم پناه به خدا می بریم خدایی که رب انسان هاست خدایی که ملک انسان هاست خدایی که اله انسان هاست این ویژگی و این صفت حضرت حق رو بیان می کنیم برای پناه بردن پناه از چی ببریم؟ من شر الوسواس خناس وسوسه که خناس در ما ایجاد می کند و این وسوسه شر است و آن شر باعث میشود اعمال و افعال ما شر و ناپسند باشد این وسوسه خناس انقدر ناپسند است که خداوند در سوره ناس میفرماید قول بگو برای اینکه از این شر و از این خطر در امان بمانید اوز بر رب ناس ملک ناس اله ناس پناه میبرم همانطوری همونطوری که در آیه دویست و دویست و یک سوره اعراف و در آیه سی و شش سوره فصلت به ما این توجه رو داد شیطان نزغه میکند اما شما هم به خدا پناه ببرید اینجا میفرماید فرماید خناس وسوسه ایجاد میکند الزی یووسب صفی صدور الناس این وسوسه رو در قلب و انسونه ها ایجاد میکند و این عامل گر که خناسه است منر جنت و ناس هم میتونه عمال شیطان از اجنه باشد هم میتونه کارگزاران شیطان از انسان ها باشد خناس صیغه مبالغه است از مستر خانوس به معنی اختفای بعد از ظهور یه چیزی که خودش رو آشکار میکنه نشون میده بعد میره مخفی میشه در مخفیگاه در کمین میماند تا زمینه ضربه زدن خودش رو فراهم کنه شرایط که لازم شد فوری بیاد نزدیک دقت بفرمایید یه وقت یه دشمنی آشکارا در روبروی ما میسته با ما دست و پنجه نرم میکنه و میخواد ما رو اذیت کنه اینو خناس نمیگن چون این دشمن آشکارا الان در مقابل من ایستاده و من میدانم که همچون دشمنی در مقابل من هست لذا خودم را آماده میکنم که از شر او در امان بمانم اما اگر این دشمن که آشکارا با من دشمنی کرده میبینه من توجه دارم و میخواهم از شر او در امان بمانم میره خودشو مخفی میکنه نقشه های فریب کارانه رو پنهانی انجام میده از دور در کمی میمانه تا وقتی که منو در تیر رس خودش دید تیر رو به طرف من رها کنه و عذیتشو به من برسونه این رو میگن خناس در روایات ما آمده است که ابلیس شیطان معروف وقتی کارگزاران خودش رو دعوت کرد و به اونها گفت میخواهم انسان ها را بنی آدم را که میخواهند متوجه خدا باشند میخواهند متذکر حضرت حق بشن اینا رو از این توجه و تذکر باز چه بکنیم یکی از کارگزاران ابلیس اسمش خناس بود او گفت من یه گوشه‌ای کمین میکنم تا هر وقت غفلت پیدا کردن از این غفلت یعنی یک روزنه نفوذ و یک روزنه امیدی برای عوامل شیطانیست که از این طریق نفوذ کنم و ضربه خود رو بزنم پس کسانی که آشکارا دشمنی دارن ولی بینن آشکار نمیتونن لطمه بزنن میرن مخفی میشن و در کمینگاه کمین همین میکنن تا شرایط مناسب شود لطمه خودشون رو وارد کنن اینو بهش میگن خناس قرآن کریم میفرماید ای پیامبر من به این امت بیاموز قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس خناس که یک عامل شیطانی است کمینگاه گرفته در مخفی ما خود رو پنهان کرده تا بتواند وسوسه‌هایش را ایجاد کند بر مبنای آن وسوسه در درون ما نفوذ کند و ما را شیطانی بسازد این قسمت فقط به عنوان مقدمه برای ورود به بحثم از آیات قرآن کریم شاهد آوردم حالا با توجه به این مطلب میریم دعای هیدهم ه سجادیه از مولایمون امام سجاد علیه السلام ببینیم چقدر معارف بلند چقدر درسهای عظیم زندگی را امام علیه السلام در این دعا در قالب دعا به ما توجه میده که ما بدانیم اگر دست به دعا برداشتیم فقط لقلقه زبان نباشد که این کلمات را به زبان برانیم به معانی آن به محتوای آن توجهی نکنیم دعای 17ام صحیفه سجادیه و کان من دعاهی علیه السلام اذا ذکر الشیطانو فاستعاذ من و من ادابته و کیده میگه این دعای 17 دعایی است از امام سجاد علیه السلام وقتی ذکر شیطان به میان میاد و پناه میبرد به خدا از شر شیطان و از دشمنی و مکرعو شروع دعا چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انا نعوذ بك من نزغات شیطان الرجیم اولین نکته اینن همون مطلبی که در آیه دویست دویست و یک دویست دویست یک عراف سی و بیان شد که شیطان نزق می و میخواهد در شما با نزق حالت شیطانی ایجاد کند و در سوره ناس با حالتی که خناس ایجاد وسوسه می کند که همون می حالا امام سجاد علیه السلام داره دعا میکنه کند اللهم ای خدای من بار خدایا انا نعوز و بکه به درستی که ما به تو پناه میبریم من نزغات شیطان رجیم از نزغه های شیطانی که رنده شده است خود شیطان رجیم است ببینید در این تیکه ای اول دعای هیبده هم چندین آیه قرآن نهفته شده یکی انا نعوز و بکه در اون آیات براتون خوندم وقتی خداوند میفرماید و اما ما ینزغن نکمن الشیطان نزغن فاستعذ بالله پناه به خدا ببرید اینجا حضرت اول پناه بردن به خدا رو مطرح کردن که حالا پناه به خدا ببرید یعنی چی با هم بحث میکنیم اللهم انا نعوذ بک خدایا به تو پناه میبرم همون گونه که قرآن دستور داد من نزغات شیطان همونطوری که قرآن در این آیاتی که براتون بحث کردم گفت شیطان نزق میکند نزق شیطانم اون نقشه های خائنانه برای وسوسه در درون انسان جهت فریب دادن انسان میگه خدایا وقتی شیطان میخواد این کار بکنه من به تو پناه میبرم این نکته دوم قرآنی نکته سوم قرآنی وقتی که شیطان سر از سجد باز زد خداوند فرمود ما منعه ان تسجد لما ما خلق تو به ای ابلی چه چیزی تو رو باز داشت از اینکه موجودی رو که با قدرت و توان خود ایجاد کردم عظمتم رو در او جلوگر ساختم سجده نکنی گفت که انا خیرون منو من از او بالاترم یعنی در مقابل امر خدا ایستاد حضرت حق فرمود انکر رجیم انعلي که لعنتی الا یومدیم تو رجیمی تو شده ای بر تو لعنت با تا روز قیامت امام سجاد علیه السلام در اینجا این نکته رو به ما توجه میدن اگر شیطان نزغ می کند چون رجیم است نزغش نزغ یک رجیمه تحریک خرابکارانه است و تحریک خرابکارانه حرکتی ایجاد می کند که اون حرکت حرکت ناپسند است پس باید از این نزق جدا شد راه جدا شدن از این پناه بردن به خداست حالا به خدا پناه بردن در ادامه خود امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما آموزند که پناه بردن به خدا چگونه است خدا نظامی دارد قوانینی دارد سنتی دارد عوامر و نواهی دارد رعایت اونها توجه به اونها میشه پناه بردن که این باید انشالله بحث بشه در جای خودش اما وقتی امام علیه السلام میفرماید اللهم انا نعوذ بکن من نزغات شیطان رجیم با وا و عطف مطالبی رو اضافه می کند و کیدهی و مکائده و مکائدهی کید مکر است، هیله است نیرنگه شخصی میخواهد کسی را بفریبد اگر آشکارا به او نشون بدهد که من هیلهگرم و با مکاری دارم شما رو میفریبم مسلما اون فرد میکوشد که فریب او را نخورد و گول او در او اثر ایجاد نکنه همونطوری که اگر کسی دروغ میگوید آشکارا به من بگوید این مطلبی که میگویم دروغ است و میخواهم با این دروغ گفتن سر تو کلا بگذارم خب است که من بیدار میشم و سعی میکنم که این کلا به سر من نرود اون کس که میخواهد دروغ بگوید سعی میکند با یک گری دروغش را راست جلوه دهد تا من فریب بخورم لذا امام سجاد سلام این توضیح رو در زیل این مطلب که در قرآن کریم آمده از شیطان نزغه می کند و در عبارت اول دعای هیده در صحیفه سجادیه به خدا عرض می کند خدایا به تو پناه میبریم از نزغات شیطان که رنده شده است فوری این مطلب رو توجه می دهد و کیدهی و مکائده، مکائد، جمع مکیده، مکاری و هیلگری و های مختلف به کار بردنه پس شیطان مکار است، هیلگر است، سعی می کند با هیلگری نزغش را خوب جلوه دهد تا ما فریب بخوریم و در اثر فریب خوردن تحریک شویم در اون مسیری که شیطان میخواهد برویم حالا از مصادیقی که جز کید و مقاede شیطان است که نزغ شیطان با این کید و مقاede در نفس انسان نفوذ میکنه چیه؟ امام علیه السلام در ادامه میفرمایند و من سعیت به آمانیه و موائیدهی و غرورهی و مساعده یک نقطهشو فقط توضیح میدم به اختضای این جلسه بقیهشو ان شاء الله در بحث بعدی با هم پی میگیریم و من از ثقته به اما امانی آرزوها جمع امنیه یک چیزهایی است که انسان به اونها امید پیدا میکنه ولی قابل دل بستن و امیدواری نیست لذا در بعضی از لغات آمده است امانی شیطان اون امیدهایی که شیطان ایجاد میکنه اون آرزوهایی که شیطان برای انسان جلوه میده هواء الباطل هواهای باطلی است که شیطان در قلب انسان القا میکند ببینید ما یک رجا داریم امید درسته مثلا یک شاگردی داره درس میخونه به او میگیم به امید اینکه دانشمند بشی، به امید اینکه اطلاعات زیادی پیدا کنی، به امید اینکه که انشالله شما به کشف مجهولات نائل بشید و آثار علمیتون رو به دیگران برسونید برو جدی کار کن این امید درسته و به خاطر این امید و رجا حرکت میکنه این حرکت میتونه حرکت مثبت باشه اما آرزوهایی که منطقی نیست، شدنی نیست یا اگر بشود ضرر دارد و برای انسان آثار سویی به همراهی آورد، اینا رو میگن امانی. این امانی که انسان رو به خودش مشغول میکنه، حرکت برای رسیدن به اونها مثل خیال پردازی است که عمر انسان رو میکنه میکنه با خیالی جنگشان و صلحشون با خیالی نامشان و ننگشون مرهوم میر فندرسکی در درون غصیده زیبا و پرمحتوا و معروفش که میفرماید چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی تا میرسه به اینجا عقل کشتی آرزو گرداب دانش بادبان حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی این که آلم به بمنزله یکی دریاست عینا در روایات معصومین علیهم السلام اومده از دنیا عمیق. ساحل نجات این دریا لقاء رب است یا ایهال انسان اهل انسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی انسان باید در این دریای هرطلاتم و طوفانی به گونه ای حرکت کند که غرق نشود به ساحل نجات برسد مرحوم میر میفرماید عقل کشتی عقلی که خدا به ما انسانها داده به منزله یک کشتی است که در این دریا ما را میخواد به سوی ساحل ببره دانش بادبان علم و آگاهی به منزله است که داره جهت این کشتی رو معین میکنه اما این نکته در اینجا ظریف عقل کشتی آرزو گرداب آرزو در اینجا همون امانیه همون امیال باطله همون هواها و خیالات موهومه که به امید اون خیالات موهوم و اون هواهای باطله انسان یه حرکاتی انجام بده مرحوم میر در این تشبیهشون عقل کشتی، آرزو، گرداب و دانش بادبان حق آلا ساحل و عالم همه دریاستی این نکته رو به ما میفهماند که امیال و آرزوهای خیال غلط مثل گرداب است که کشتی عقل و علم را فرو میبرد به گلمی نشاند و نمیگذارد به ساحل نجات برسد شیطان از ابزاری که استفاده میکند نزغ او به تعبیر قرآن کریم یا به فرموده امام سجاد علیه السلام در درون ما نفوذ کند اینه که و منسقته به امانی اون امانی شیطان که امانی یعنی خیالات موهومه و وعده‌های پوچ هواهایی است که شدنی نیست اطمینان و ثقه به این پیدا کنم یعنی خدایا به تو پناه میبرم کمکم کنی این معرفت رو پیدا کنم اون چیزی که باید به او سقه داشته باشم سقه داشته باشم اون چیزی که باید به او امیدوار بشم امیدوار بشم اون چیزی که باید به او دل ببندم دل ببندم نه چیزی که قابل اتکا و دل بستن نیست به او اطمینان پیدا کنم ببینید در قالب مثال کنم اگر مثلا بنده یک سفر طولانی در پیش دارم با یک اتومبیلی با عنوان ابزار سفر با حرکت کنم وقتی نگاه به اتومبیل می کنم میبینم مثلا چرخهای این اتومبیل به قدری صاف شده، ساییده شده که قابل اطمینان برای یک سفر 2000 کیلومتری نیست. هر عاقل با توجهی به من میگوید چرخ های اتومبیل رو عوض کن، به این اطمینان نکن چون ممکنه در سرعتی که تو اتوبان ها داری این لاستیک ترکیده شود و مشکلاتی ایجاد کند. حالا کسی قصد عذیت مرا دارد به قول قرآن کریم و فرموده امام سجاد در اینجا میخواد نزغ کنه چه میکنه؟ یک شکل از نزغش اینه هی hey در من ایجاد امید کاذب میکنه و میخواد من به این حرف اطمینان پیدا کنم میگه اصلا نگران نباش من به تو قول میدم اصلا این چرخ مشکلی نداره با همین چرخ حرکت کن حالا قصدش اینه که من با این اتومبیل حرکت کنم با این چرخ سایید شده غیر قابل اطمینان به خطر بیفتم این کار او امانی شیطان کارش این است که ایجاد امانی کند یعنی وعده های پوچی بده یک حرفهایی رو برای من زیبا جلوه بده که زیبا نیست اما من بخوام به این حرفها اطمینان پیدا کنم لذا امام سجاد علیه السلام به خدا عرضه می دارد انا نعوذ بکه من نزغات الشیطان الرجیم ای خدا به تو پناه می بریم از این نزغات شیطان رجیم و کیدهی و مکاعدهی از مکاری های شیطان از حیلگری های شیطان به تو پناهنده می شویم و من از سقته به امانیهی سقه کار ماست اطمینان پیدا کردن امانی کار شیطانه یعنی خدایا به تو پناه می برم که من به گونه ای شوم که نتوانم بفهمم امانی شیطان امانیست این رجان نیست این قابل امید و دلبستن نیست به تو پناه میبرم به من کمک کنی معرفتی پیدا کنم که ثقه و اطمینان نسبت به این امانی در من ایجاد نشود ان الله ادامش رو در بحث بعدی پی خواهیم گرفت و سلام علیکم